حوض بالله السمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاة و السلام علی نبینا نا و آله تاهرین خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم صبح بخیر عرض می کنیم انشالله که به لطف الهی از نعمت صحت و سلامت به طور کامل برخوردار هستید و انشالله که با اینایت واری تعالی از هر گونه گزند و بلایی هم به دور باشید اما بحث ما در عروس به بهر متقارب رسیده بهر متقارب یکی از بهرهای پر استعمال و بسیار هم زیبا و از بهرهای هم هستش که برای یادگیری راحته اگر یه درقتی بفرمایید این بحر هیچگونه جره و سختی در یادگیریش نیست راحت قابل حفظه بحر متقارب بحر المتقارب خب متقارب گذاشتند خب چون الان نگاه کنیم به تیله های اون از هشت تا فعولان تشکیل شده. چهار تا در صدر چهار تا در عجز یعنی این بهر اینه فعولان، فولان، فعولان فعولن فعولان فولان فعولان فعولان فعولان فعولان بحر متقارب خب بحر المتقارب مفتاح البحر کلید این بحر ببینید اند متقارب قال الخلیل خلیل ابن احمد فراهیدی مخترع و کاشف عروض عربی قال الخلیلو ان المتقارب او در مورد بحر متقارب چنین گفته فعولون فعولون فعولون فعولو, فعولو یعنی فعول قال لیل الخلیلو فائلشه ان المتقارب متعلبه به است. در مورد بحر متقارب خلیل چنین گفته این فعولان فاعول فاعولن مصره مصرع دوم یعنی عجز بیت مفعول قاله است خلیل بحر متقارب را چنین بیان داشته فاعول فاعول فاعولن فاعولن هوزل بحر این بحر یتعلف و منتفعیلت فعولان این بحر تشکیل میشه از تفعیله فعولان تتکرر رو در حالی که تکرار میشه سمانی مراتن هشت مردان آزال بحر و یتعلف من و منتفعیلت فعولان تتکرر رو سمانی مراتن این بحر تشکیل شده از تفعیله فعولان در حالی که تکرار میشه هشت بار الان نه به تالی به این شکلی که شما میبینید فعولان،, فعولان فعولان فعولان فعولان چارتا فعولان فعولان فعولان فعولان چارتا این بحر متقارب پس بحر متقارب هشتا تفکیله داره چهارتا فعولان در صدر چهارتا فعولان در اجز این رو آقای خلیل خلیل ابن احمد فراهیدی که در اول کتاب خوندیم که واضع علم عروس بیان کرد اما تغییراتیک عارض آرز میشه بر این برد از تغییرات و لتی تتره و علا بعد از اون تغییراتی علتی که تتره و آرز می شود علا خازن تغییراتی که تو این بهر شما می بینید. یک زهاف القبض هم داشتیم که به اونی که تفعیلی که داخل بشه بهش میگن مقبوزه زتون، زهاف و غبزه زهاف هم که میدونید دیگه هم در حشف داخل میشه هم در عروز و هم در ضرب و قابل ادامه هم نیست زهاف و, و هو و خوبه حض فلعرفه الخامسه من التفعيله حرف پنجم از تفعيله حذف بشه و اون نون اون نون بشه بشه و هوا به حذف اول حرف ال من التفعيله و حينما يد خدا على و موقعی که داخل میشه بر فعول نیقلب و ها فعول تغییر میده او رو به فعول و یغلبوها الی فعول فهینما پس پس انگامی که یدخلو این زهاف داخل میشه علا فعولان بر تفعید فعولان یقلبها یو تغییرش میده یو برش میگردونه الا فعول خب این یک دو دو قبلا داشتیم که به اون تفعیله هم که داخل بشه بهش میگن مقصوره علت القصره و اونی هم که بهش داخل شدش بگن مقصوره علت و غصر هی و هیه حذف ساکنه از سبب الخفیفه من آخر تفعیلته و تسکین حرکت لذی قبله علت و غصر علت و غصر و هیه و اون علت وارد است حذف ساکنه از سبب خفیف من آخر تفعیلت سبب خفیف یعنی خط تیره فعولون این خط تیره یه مترکه یه ساکن حذف ساکن اون سبب خفیف از آخر تفعیل اینو حذف حضف کنیم بشه فعولو بعد و تسکینو اتوجه حضفه و تسکین المتحرک و ساکل کنیم اون متحرکی که الذی قبل هم. یعنی فعولون بشه فعولو بعد فعولو بشه فعول برشور و اما تدخل علا فعولون تو الی علا فعول و موقعی که داخل بشه این علت قصر بر فعولان بر تغییر فعولان تغییرها الى فعول اونو تغییرش میده به فعول به این فعول میگن مقصوره پس فعولو زحاف بهش داخل شده اولی مقبوزه است فعول علت قصر بهش داخل شده مقصور است علت الغزله و هي حذف ساکن عصب و, و خفيف من آخر تفعیلته که میشه فقط اگر اون حذف اتفاق بیفته فعول بعد این دو مرحله است و اون ما قبلا متحرک ما قبل اینی که محذوف بشه ساکن میشه و هی نماتد خلا علی فعول تغیر و حیلا فعول سه الۃ الحذف و به اونی هم که این داخل بشه میگن محزوفه محزوفه و هیه حذف از سبب خفیف فرض سبب خفیف من آخر تفعیلت کلا اون سبب خفیف رو حذف کنیم از آخر تفعیلت و حينما تدخل علافعولون تغییروا اله فعو بهش میگن فعول پس این سه تا تغییر درش هست اگه فعولان بشه فعولو فعولان بشه فعولو این مقبوزه هستش و زحاف قبض بشته و اگه فعولان بشه فعول این مقصوره هستش و علت فصل بهش داخل شده و اگه فعولان بشه فعول این محزوفه هستش و علت هست بهش داخل شده بسه بس تا تغییر دیگه فعولان بشه فعول محزوفه ذهاب داخل شده فعولان بشه فعوله مقصوره علت به هست بشتاخل شده فعولان به شرفه او این محزوفه به علت هست بشتاخل شده خود خیلی راحت انواعو بهر المتقارب انواع بهره المتقارب زکرن عروضیون انواع این بهر زکرن عروضیونه لبهر متقارب انواعا تامت و مجزوعتن ها برای بهر متقارب انواعی ذکر کردند که تام و مجزوعاند تامه یعنی هشتا تفعیل داره مجزوعه یعنی شیشتا این و سهتاوم انواع بهر متقارب رو از دو نوع تام و مجزوع ذکر ها ذکر کردن زکر العروضی بهر لبهر المتقاربه انواع انتامتن و مجزوه هم تامشو ذکر کردن هم مجزوش انواعی از اون رو ذکر کردن میگه ول مجزو اومنها نادرن به شعر العرب ولی وقتی ما برفتیم بررسی کردیم دیدیم که مجزوشو که ذکر کردن خیلی نادره در شعر عربیه یعنی اگر مثلا فرض کنید که 100 تا قصیده تو بحر متقارب گفته شده نوودو هفت داشت نوودو هشت داشت تام تو دو تا ممکنه مجزوع باشه پس این مجزوع رو دیگه انگاهشو نمیکیم چرا چون نادره ان نادرو کلم عدوم نادر چیز نادرم نازر به منزله اینه که اصلا نیست حفظش سخت خواهد شد ما اصل رو که انواع تامه با شما بحث میکنیم زکر العروزیونه لبهر المتغاربه انواعن تامتن و مجزویتن این تامتن و مجزویتن صفت انواعن انواعی که دو نوع تام و مجزویت بل مجزوع و مجزوع از این بحر متقارب از این انواع نادرون نادر از است در استعمال شعر عربی به شعر عربی لزام و برای خاطر همین که نادره رائن الافضل الفزلن نقطصر فی شرحنا علی الانوار المهمته من تمام و به خاطر همین ما بهتر اینو دیدیم رائن و الفزلن بهتر اینو دیدیم کونم رو دیدیم رأینا الافضل ان نقتصر بهتر اینو دیدیم چیو بهتر دیدیم اینکه ان نقتصر ان نکتفی اینکه اکتفا کنیم فی شرحنا در شرح خودمون این کتاب علی العنواع مهمت من التام بر اونهایی که مهم از همین تام ما اکتفا به همون کنیم یعنی دیگه به قول خودمون مججوع که نادرل استعماله برای شما ذکر نکر. رینا عینا الافضل زدن. یعنی این مفعول این. افضل رو این دیدیم. چی رو افضل دیدیم؟ اینو. ان سرفی رفی شرحنا. اینکه اکتفا کنیم در شرح خودمون بر انواعی که مهم است از نوع تامش تام نه یعنی ملت نوع تام فقط همونهایی که تام هستند و مهم هستند همونها ذکر کنیم دیگه سراغ اون نادرهای مجزوع نیم و من با ملاحظته و, و از مواردی که لازمه شما در نظر بگیرید و من مایجه با تو، آن تفیل تلاع روز فرا بساده‌ایل منزومتی فی هزار بره لاتبرقالا وزن دارد. اینو خوب تو ذهنتون داشته باشید. اینو من ابخارش می‌کنم خوب توجه کنید. میگه باز از چیزایی که لازم تو ذهنتون داشته باشید، بهش توجه کنید. اینه که تفیلیه عروز یعنی چهارمین فعولان او. توی مصره اول چارمین فعولان این تفعیله عروض فیلی بزار در منظومت فیاز در قصیده که تو این وحر متقارب گفته شده این تفعیله چهارم فعولان لا تبقه وزن واحد توی یه قصیده نگاه میکنی میبینی بر یه وزن واحد نمونده به تغییر کرده روش شد بل ت رو بلکه هی تغییر کرده فمرتن تکون و مرتتن تکون علا فاعولن تو یه بیت نگاه میکنیم میبینیم تفعیل چهارون فعولانه یعنی سالم است و اخرا و تو یه بیت دیگه این تفعیل رو نگاه کنیم فعول شده یعنی محذوف است تو یه بیت دیگه ممکنه که مقصوره اومده باشه فعول پس تفعیله چهارم که عروزه این بر یک وزن تو یک قصیده واقع نشده به یک شکل واقع نشده این عادت شعره در این بحر متقارب تو تامش. بنابراین بنابراین که اونجا همش تغییر میکنه فاختلاف و انواع تام ملها زرب یتعین به ضرب فقط پس بنابراین اگر ما تقسیم میکنیم تام رو به اعتبار ضربش یعنی تفعیله هشتم یعنی فاولون هشتم ازش که یه دسته به اون اعتبار ما تقسیم میکنیم لذا چون تفعیله چهارم در معرض تغییر است مدام اختلاف انواع تام پس اختلاف و انواع تام از این بعد یتعین به ضرب فقط با ضربش ملاک هستش فقط فقوان لذی یمیز عن نوع من hazards یعنی برابری هو این ضرب فقط الذی چیزی است که یمیز عن نوع من hazards تشخیص در این برد فقط با زر بشه پس با عروزش نیست چی گفتیم؟ گفتیم در بحر متقارب عروز یعنی فعولان چهارم در معرض تغییر توی فسیده یه جا فعولانه یه جا تغییر میکنه پس بنابراین این نمیتونه ملاک برای تقسیم بحر متقارب تام باشه بلکه ملاک عبارت است از زر بدهید یعنی فعولون هشتم چون اونه که یه دست هستش در این قصیده پس و من یجب و با ان انه العروض فی فیل غصاری دل منظومت فیازل لا تبغا علا وزن واحد بل تتغییرو فمرتن تکونه علا فعولون و اخره علاوه لذا فرقتلاف و انواع ابطامه فرقتلاف و انواع ابطامه منعازل به یتعین و بزرب فرد فهون لذیومی نوع من عنوامینهازن این چیزیه که انواعش رو میتونیم بر اساس اون تشخیص خب کنیم راحت حالا نگاه کنید بحر متقارب تامشو می میخوایم تخصیل کنید چند تاست؟ یک نگاه کنید المتقارب و از صحی دو المتقارب و المحضوف یعنی علت هز بشتاخل شده سه المتقارب و المخصور یعنی علت دست بشتاخل شده چون دوتا علت بیشتر نبود دیگه که قابل ادامه که علت و دیگری علت حصفه توی کتاب که داشتش علت ها رو اول علت قصر رو گفت که بشه فعول بعد علت حذف رو گفت که بشه فعول اون زربش شد توی شرح که داره توضیح میده اول علت هزف رو میگه دوم یعنی نوع دوم بعد علت غصر رو میگه حالا بخونیم ببین خوب المتقارب از صحیح متقارب صحیح المتقارب و صحیح خب اگه بگن به امون یعنی یعنی چی چیچی صحیحه میگم یعنی اون فعولان هشتم فعولانه ملک اونه ملک فعولان چهارم که تو عروزه نیست الا متقال بو از صحیح و هو ماکان ضرب و هو الا فاعول اونیه که ضربش به شکل فعولان آمده ما کاری و عروزش نداریم ضربش به شکل فعولان رسیده الا و بو از صحیح و ماکان ضرب و هو و نحو قول دمامینی مثل قول این شاعر ما که چنین گفته رمانی زمانی این دوتا با هم جناس ناقص داره زمانی فایل رمانی است رمانی به من تیر زدند مصیبت به من زدند کی زمانی روزگار من به ما ساعنی به ما متعلق است به رما به آنچه که ساعنی من ناراحت کرد سا افایلش به ما آید سله به محسولی پس روزگار من مرا مصیبت زد رمی کرد من رو به من تیر زد به ما ساعنی با آنچه که من ناراحت ساخت فجاعت نهوسون و قابت سعودون سعودون یعنی سعودون نحس و سعد و مشخص زده زد همه نهوس و سعود با هم متضاد هستند. همونطور که جاعت و قابت با هم متضاد هستند که این دوتا با دوتا با هم متضاد هستند بهش میگن سنعت مقابله قابت و جاعت صعود و نهوز مثل فلی از حکو غلیرن و یبکو کسیرن آیه قرآن. ولی از حکو قلیلن ولی اپکو کسیرن ولی با ولی کو قلیلن با کسیرن پشت میگن صنعت مقابله مرتب دو تا این ورمده دو تا اون با هم متضادن مقابل هم مرتب دو تا دوتا هست ستا ستا هست چهارتا چهارتا هم هست پشت میگن صنعت مقابله رمانی زمانی روزگار مرا مصیبت دار کرد به چیزی که ناخوشایند بود بر من پس بنابراین آمدند هرچه که نحس بود و رفتند هرچه که سعادت بود نحس‌ها رسیدند و سعادت ها رفتند روزگار با من بد رفتار کرد هرچی نحس بود من رو کرد و هر چی سعادت بود از من دور شد رمانی زمانی به ما ساعنی فجاعت نهوسن و قابت سعودو و اسبحتو بین الورا مشیب علیلند فلیتش شبابه اون و تو یعنی سر و گردیدم علیلا خبر اسبه توست علیل ناتوان شدم بین الورا در بین مردم الورا یعنی الناس بین الورا متعلق و عدیدن بین مشیب متعلق و عدیده به مشیب یعنی به مشیبی یعنی به شیبی به پیری خودم به واسطه این پیری و عدم توانایی که پیدا کردن به واسطه این پیری و عدم توانایی علیل و ناتوان گشتن بین مردم آن کاری کرده دیگه من از چار کرده یکیش بزرگترین بدبختیش این پیری و ناتوانیه که به من داده اسفحت و علیلن بین الورایی یعنی بین الناس بلمشیب یعنی به مشیبی با این پیری که پیدا کردم درست من الان این طور شده اسفحت و بین الورا بلمشیبه علیلن. فلایت شبابه یعود حالا که این بدبخت بدبخش شدند پس کاش بنابراین ای کاش هش شباب اون جوانی اون سعادت یعود رو بر میگشت و ای کاش این نحس پیری که رسیده میرن و از بحت و بین الورا بلمشیب علیدن فلایت شبابه یاود. قافیه دالیه است سعودو و براد شد رمانی زمانی به ما ساعنی بیت بیت مسرم نداره و شما راحت میتونید بیت بیت دو بیت قشنگیه من هم هم با ترکیب براتون گفتم که بتونید بیت رو بفر رمانی زمانی به ما ساعنی. فجاعت و وقابت صعود و از بین الورا برمشیدی علیلا فلیت الشباب یعود حالا بخونی داعت رمانی فعولون زمانی فعولون این من بماسا فعولون الان نگاه کنید فعول. این الان محذوف است او تو عروزه ما گفتیم عروزش در معرض تغییره ملاک نیست فجاعت فعولن نهوسن فعولن سالمن وقابت فعولن سعودو فعولن این ملاک فعولن سعودو این ملاک ضرب بیت سالم برای همین گفتیم این متقاربه صحیحه الان بیت دوم نگاه کنید میرسیم به عروزش دقت کنید اون قبلی عروزش بیت قبلی عروزش اومد فعول محذوفه اینجا ببینیمش و به فعولان توبینل فعولان ورابل فعولان مشیبی فعولان سالم است عروض سالمه شد تو بید تو عروضش در معرض تغییر ملاک نیست علیلن فعولان فلیتش فلیتش فعولان شباب فعولو یعنی مقبوس است. تو هشبه هست زحاف قبض بهش داخل شده ایش کنید حتی اگر زحاف قبضم داخل نشده بود مشکلی ما نداشتیم فعولو یعودو فعولو میگه اونی که شما ملاحظه میکنید الملاحظه هنا اونی که ملاحظه میشه در اینجا اینه آن نجمی اتفاالتها زین البیتین، اینکه همه تفیلاتهای این دو بیت الملاه هنا آن نجمی اتفاالتها زین البیتینه سالمه تون. همه تفیلاتهای این دو بیت سالمند. ایلا، همه تفیلات سالمه. ال از تفیلات رابع یعنی عروس مگر تفیه چهارم من البیت اول فقط از بیت اول فقط تفیله چهارمش که تفییلله عروزش اون محظفه بود. الملا هنا ان جميع از تفیلات زین البیتین سالتون اللا از تفیلات من البيت د فقط جاعت محضوفتن و اون آمد و تفعیلتون از سابعتون و همچنین تفعیل هفتم من ال بیت از بیت دوم فقط جاعت مقبوضتن اینم بازها به قبض اومده است. هر دوتاشم قابل ادامه نیست ولو اون یکی علتم باشه گفتیم در عروز عروز این بحر متقارب به شکرهای مختلف توی غصیده میاد و ملاک دیست الملاحظه هنان و جمیع تفعیلات هازین البيتین سالمتون الا التفعیلت الرابعت من البيت الاوله فقط جاءت محزوفتن و التفعیلت و من البيت الثاني فقط جاءت مقبول, مقبول ستن خب این نوع اول راحت خود زیاد جزه. سختی هم نوع دومش متقارب محضوف یعنی ضرب اون علت حذف دارد یعنی فعول شده ضربش علت حذف دارد یعنی به جای فعولون شده فعول المتقارب و وهو و, و هوه ماکانت اونیه که تفعیلت و زربیهی محزوفتن ضربش زربش است یعنی هشتمین تفعیله به جای فعولون فعو فاو، فاو، فاو تا آخر بلشو. و ما ماکانت تفعیلت و زربیهی محزوفتن و ها زن نوع من المتقاربه و این نوع از بحر متقارب اکثر و شیوع هم. خیلی شیوعش زیاده به خاطر همینه دو پر زکرش کرد درست شده؟ و ها زن نوع من المتقاربه اکثر و شیوع هم شعر العربی در شعر عربی از همه بیشتره من غیرهی حتی از اون قسم سادم صحیح که اول گفتیم ولی اون صحیح را که اول گفتیم به دلیل اینکه که و علتی توش نبود ذکر کردیم ولی این از همه بیشتر برشد فهازن نؤمن المتغاربه اکثر و اکثر و عرف شعر العربی من غیرهی نه قول قوله متنبی مثل قول جناب آقای متنبی متقارب محزوف متقارب محزوف و اون عبارت است از بحری که تفیده ضرب اون محظوف است یعنی به جای فعول دار فعوست و این نوع از بحر متقارب از همه شیوعش بیشتره در شعر عربی و ما بیشتر از بقیه این رو میبینیم یعنی متقارب محظوف نه قول المتنبی مثل قول جناب آقای پس ضربش به جای فعولان فعولست المتقارب و المحذوف و هوا مقانت تفعیلت و ضربی یعنی فعو به جای فعولان و هازن نوع من المتقاربه اکثر و شنوعن به شعر العربی من غیرهی نحو با قولن متنب. خوب رضاکه رزاکه رزا یلنزی رزا او سرو و سرکه سری فما او کفت کل مروعتو ما تد و آمن کل ودو ما رضا که رضای رضایت تو رضایت من است خوشنودی تو خوشنودی من یعنی من خوشنودیم اینه که تو خوشنود کشی میگه آقا رضایت شما رضایت ماست یعنی ملاک رضایت من رضایت توی رضاکه مبتدا رضایت خبرش خوشنودی تو خوشنودی منه اللذی صفت رضایت خوشنودی من که اوسه رو او رو یعنی انتخب رو ایزار میکنم ترجیح میدم اون رضایتی که مال من باشه و من ترجیحش میدم رضایت توست خوشنودی توست پس خوشنودی تو خوشنودی منه خوشنودی منی که من ترجیحش میدم بر هر چیزی خوشنودی که من ترجیحش میدم بر هر چیزی عبارت است از خوشنودی تو رضاکت، رضایت رضایل لذی او رو میکنم یعنی انتخب و یعنی اختار و اختیار میکنم اون رضایتی که من برا خودم اختیار میکنم عبارت هست از رضایت تو خوشمدیه و سر رو که لی و راز تو راز منه راز تو آنچه سر توست همان سر منه اما فما ازهرو پس بنابراین هیچ موقع من ظاهرش نمیکنم چطور من راز خودم رو برملا نمیکنم راز تو هم راز منه مثل راز برآمد، مثل راز خودم نمی کنم. چطور خوشنودیه تو رو خوشنودیه خودم میدونستم و همون انتخاب میکردم. راز تو هم مثل راز خود منه پس بنابراین چطور رازی نیستم راز خود رو افشا کنم راز تو رو هم اظهار و افشا نمیکنم. پس سر و و راز تو راز منه پس هیچ وقت اون رو ظاهر نمیکنم. کنم کفت کل مروعت و ماتد تری کفا اگر دو مفعولی باشه به معنای حفظ کردن وقاست نقایبی حفظ کرد کفا اگر دو مفعولی باشه به معنای وقاست حفظ کردن کفت کرد یعنی حفظ کرده تو را المروءه این مردانگی تو حفظ کرده تو را این مردانگیت ما مفعول دوباره اون کاف مفعول اول حفظ کرده تو را این مردانگیت ما تد آنچه آنچرا که ازش میترسی پرهیز میکنی تو از یه سری چیزها پرهیز میکنی دیگه مثلا کسی به تو خیامت کنه کسی در حق تو نامردی کنه کسی حق تو رو بخوره اینا چیزایی که تو ازش پرهیز میکنی خب میگه مردانگی تو تو رو حفظ میکنه از اینها کسی در حق تو این کارها رو نمیکنه کفت گل مروعت و ماتد یعنی ماتد تقیه که تو ازش پرهیز میکنی مردانگی تو تو رو از اونها حفظ میکنه چون تو مردانگی دادی چون تو در حق دیگران نامردی نمیکنی این مردانگی تو تو رو از ها که هر هیز ازش میکنی حفظ میکنه کفت کل مروعت و ما تد و آمنه که آمنه هم دومفعوریه ات به جای همین هتو که این کفت کردید و آمنک الودو این ودود بودن تو خوب این دوستی و مودتی که تو داری آمنک تو رو امان داده حفظ کرده آمنک ما تهزرو کاف مفعول اول ما مفعول تو به و حفظ کرده تو را این مودتی که در تو هست ودی که در تو هست دوستی که در تو هست اینکه مردم دوستت دارد خب این که ما تهزرو تو رو در امان نگه داشته نسبت با آنچه که ازش حذر میکنی احتیاط میکنی آه چیزایی که تو ازش احتیاط میکنی، هذر میکنی، میترسی، چون مردم دوست دارن تو در امانی. اینقدر نسبت به تو ود وجود داره که این دوستی مردم تو را باعث شده که تو از هر شر و بلایی در امان دمانی. خیلی زیباست. و آمنک الودو یعنی ودو. الودو یعنی ودو کرد مثل المروعتو یعنی مروعتو که این مردانگی تو این ودود بودن تو تو رو در امان نگه داشته از هر چیزی که ازش هذر میکنی از تمام این بلایایی که تو هذر میکنی تو در امانی به خاطر چی؟ به خاطر این ودود بودن و مودتی که داری او قشنگ بود. رزاکر رضا یلذی اوسر و سرو سر کسر دی فما اظهرو کفت جل مروعه و و امنکل و دو ما تهزرو. حالا سوال اینجاست آیه اینجا بیت مصور داریم بله. اوسر و اظهرو اما بعدی تتقی ته ضرور بقد را در مثل دوم بیت دوم هست بیت اول این بیت مسرده توجه داشت باشه رزاکه فعولو این مخصوص است چی مخبوص هست باشون زعاف قرض بشتابه داشت رزاکه رزایل فعولو سالم است لذی او فاولن سالم است سرو فعول این محذوف است تو عروضش خب و سرو و مقبوز است کن سربی کن سربی سالم است و ما سالم است فاولن هرو فعو اینجا نگاه کنید ملاک این فعوی هشتمه، این هرو اما اگر اون قبلیشم ارو، او سرو سرو آمده اون هم آمده به خاطر بیت مسرر بودنش چون بیت مسرر عروض یعنی سرو مشابهت پیدا کرده با ضرب یعنی هرو فاو فاو بقیه‌ش هم اگر شما مقبوزه می‌بینید توی تفعیله یک و تفعیله پنجش اون ارزشی نداره دیگه زواف قبل کفت کل کفت کل فاو لول غلط نمیشته. مروعه فعول است است. من من غلط میشتم درست کردم. مرو مروعه فعول مقبوضه. توما تد توما تد سالم است. تغییر فعول محضوف است این میتونه چیز دیگه بیاد فعولون هم بیاد چون این عروزش گفتیم که در معرض تغییره اگر تو بیت اول فعول آمده بود عروزش اونجا لازم بود بیاد چون میخواست بیت مسرع بود با بیت دوم مطابقت متابقت اما اینجا لازم نیست حالا اومده تغییر فعول و ا و امنه فؤ لو ممنوز است نکل نكا ود نکل ود و نکل ود و امن فؤ لو نکل ود فؤول سالم است دوما ته دوما ته فعولن سالم است زن فع این لازمه بیاد اینجا این ضرب بیت لازمه که محذوفه باشه میگه الملاحظ حالا ملاحظه شده بدید الملاحظه فی الف بیت الاولی اونی که شما ملاحظه میکنید در بیت اول اینه تفعیلت عروزهی اینکه تفعیل اینکه تفعیلت عروزش قد اش پهت تفعیلت ضربهی تفعیلت عروزش شبیه به تفعیلت زربش شده اینجا واجبه بشه چرا چون بیت بیته مسرحه سرو شبیه شده بود به هرو فعو فعو الملاحظ فی البیت الابوله انت تفعیلت اروزهی قد اشبهت تفعیلت زربهی چرا لان البیت مصرعون چون بیت بیت مسرعه و لازمه بشه اما ولاکن تفعیلت الاروز فی عبیات الاخرا ولی اگه برید قصیده رو نگاه کنید تفعیل عروز در بیت های بعدی قد تعتی محزوفتن گایی اومده مثل که نییمه حالا بیت دومش. و لاطی ترتیب نم. گویا واظع محسوب نیست. اتفاقی در بیت دوم این تقی فعو شد. و تو بیت سوم، چهارم، پنجم برید تو قصیده نگاه کنید، اینجا اصلا محذوفه نیامده چون در معرض تغییره. و لکن لا تفعیله العروض فی در بیت بعدی قد تعدی محضوفتن گای اوقات محضوفه آمده و قد دار تعدی و گای اوقات هم ولی تو بیت اول چون بیت بیت مسرعه لازمه که محضوفه بیاد چرا؟ چون عروس تابع سر بشه کنه بود و گفتیم که این قسم از همه اقسام این قسم از همه اقسام شیوعش بیشتر اما سومین قسم المتقارب و المقصور. متقارب مقصور یعنی اونی که هشتمین، اونی که هشتمین تفعیلش فعول هستش هشتمین تفعیلش فعول هستش خب. آیا ضربش ملاک؟ نه ضربش ملاک نیست ضرب ملاک نیست الان نگاه کنید المتقارب و المخصور و هوا مکان تفعیلت و ضربهی هشتمی مخصورتن مکان تفعیلت و ضربهی مخصورتن فعول نه و قول المتنبی باز قول آقای متنبی اگر نگاه کنید این دوتا بیت رو بیت اولش بیت مسره پس عروضش هم حتما تابع ضربش میشه میشه فعول اما بیت دوم دیگه بیت مسره نیست چون بیت دوم بیت مسره نیست درست شد عروضش تابع ضربش نیست لذا فعول ممکنه نیاید. درست شد فاونم نیامده میگه که سنون تو عاد و دهرن اید میگه سالها تو عاد هی اعاده میشه سال 99 میشه سال 1400 سال 1400 سال 1401 1400، همینطوری میره شده سنون تو عاد سالها تجدید میشه اعاده میشه و دهرون یعيد و روزگار هی اعاده میکنه هی سالها رو بر برمیگردونه سالها برگردونده میشه و روزگار هی اعاده میکنه هی روزگار روز رو میبره دوباره بر برمیگردونه شب رو میبره دوباره بر برمیگردد ماه محرم میره دوباره محرم برمیگرده سال فلان میره سال بعد میگه دنیا اینطوریه دیگه سالها تکرار میشه و روزگار همه چی رو هی تکرار میکنه بر میگرده ععاد یو و دهرون یو ایدو لعم کرد لعم کرد اون لام لام افتداییت یه محتداست میگن چون سریح در قسمه خبرش واجب الاسقه یعنی لعم کرد قسمی تو مبتدا خوند توی نحف خوندید مبتداهایی که سبروازه به حسبی کشید لعم که قسمی به جان تو قسم لعم رو که قسمی اینم مافل لیالی جدید جواب قسمی پس به جان تو قسم مافل لیالی جدید تو این روزگار چیز جدیدی ما نمید از اول روزگار همین بوده روز میرفته شب میاومده شب میرفته روز میاومده سال فلان میرفته سال فلان می محرم میرفته محرم بعد میاومده می سفر میرفت سفر صفر تو تکرار پس سالها اعاده میشه و تکرار میشه و روزگار همه چی رو تکرار میکنه تکرار تکرار تکرار هم. بنابراین به جان تو در این روزگار چیز جدیدی نیست ما لیالی جدید به فل‌یانی خبر مقدم جدید مبتدا مؤخر این ما ما مشبحتون بلیس است چون جای اسم و خبرش عوض شده دیگه عمل ندید خب دنیا همش تکرار خداییش چیز جدید توش نمی‌بینیم به جان توسل تمام ازا علی آدم هازل هلال هازل هلال همین هلال ماه که الان میبینیم عربها با ماه دیگه هلال که میاد ماه اول شروع میشه هلال بعد ماه دوم بعد دوازده تا ماه که تکرار میشه یک سال قمری میشه میگه ازا ال آدم پرت و افشانی کرده برای حضرت آدم اولین بشر اولین آدم بر روی کره زمین حضرت آدم همین هلال ماه رو دیده ازا ال آدم الهلال رو همین هلالی که من دارم میبینم تو میبینی همین هلال برای حضرت آدم هم روشنایی و پرت و افشانی کرد فکیف و الهلالو الولیدو پس چطور شما برمیگردید میگین ماه نو ماه تازه متولد شده همین یعنی هلال بوده آدم هم دیدتش پس همش تکراله ما ماه نو نداریم فکیف فتغولو پس اگر همین هلالی که ما داریم الان میبینیم همین شب و روزی که ما داریم میبینیم حضرت آدم هم دیده فکیف فتغولو و چطور میگی الان ماه اول مثلا شب اول محرم ماه رو میبینی میگه او ماه متولد شد میگن دیگه میگن ماه نو ماه متولد شد ماه جدید جدید بسید فکی فتغولو الهلال و الولید یعنی حازا الهلال و الولید این ماه نو است کجا همچین چیزی بزاره. بگه دنیا دنیایی بوده که از حضرت آدم تا الان همه داره تکرار میشه این دنیا چیز جدید نداره سنون تو آدو و دهرون یو امر لعمرو کماف اللیالی جدید اضاعل آدم هازل الهلال فکیف تقول الهلال الولید خب شعر رو قشنگ فهمید میگه سنون فعول و است باش تو آدو فعول است باش اینه تو هش و ده رون سالم است یعید یعید فعول. این الان مقصور است این باید باشه میدونی چرا گرچه عروزه ما گفتیم عروز ملاک نیست ولی اینجا ملاکه چرا چون بیت مصرعی باید تابع ضربش بشه ضربش فعوله اینم باید بشه لعمرو فعولو کمافل کمافل فعولون لیالی فعولان جدید فعول اینجا این فعول لازمه چون شاعر انتخاب کرده که دستیدش متقارب مقصور باشه اون فعول قبلش هم تو مصر اول که اید بود اونم لازمه چرا چون بیت مسرحه عروس باید تابع ضهر اما در بیت بعد دیگه چنین نیست ازاع فعولو باشو مغبوزه است در هشم لعاده فعولو مغبوزه است باشو تو هشم مهازل فعولون سالمه است هلالو الان ببین عروض این بیت چون مصدره نیست اصلا سالمه اومد فعولون فکیف فعولو فکیف فعولو تقولل سالم است اس هلالل فعول ولید فعول این فعول لازم بیاد این فعول چرا چون هشتمیه و بهر متقارب مقصوره پس بنابرین باید ضربش مقصوره بیاد خب اومد میگه الملاح هست اونی که شما میبینید فیها زین در این دو تا بیت الملاح از فیها زین البیته ان بعض تفعیلات جاءت مقبوزه اونی که شما در این دو تا بیت میبینید اینه ان بعض تفعیلات ما، اینکه بعضی از تفعیلات اینها جاءت تا. به شکل مقبوزه آمد، و تفعیلت و زرب ما مقصوره و میبینید که تفعیله زرب هم مقصوره اومده و واجبم هم بیا جوش خودش بهر متقارب مقصوره انتقاره میگه بچه توی عروز بیت اولم مقصوره اومده میگه ولم ما کاند البیت ال اول و مسررن چون بیت اولش بیت مسرع بوده ال اول و لما کانت البیت الول و مصرر اش به تفعیلت روز تفعیلت از زرب تفعیل عروزش مشابهت رسونده به تفعیل زربش اون هم به شکل مخصور آمده و در بیت دوم شما تفعیله عروز رو میبینید که فعولان آمده و سالمه فعولان آمده و سالمه تمام شد خلاست تو بحر المتقارب خلاستش رو بیان میکنه دیگه شما راحت میتونید همه رو بفهمید خیلی من آرام و با تکرار گفتم عبیات رو ترکیبی براتون بیان کردم و معنا که بتونید کاملا مسلط بیان میشه خلاست و بحر المتقارب بحر المتقارب انواعون برای بحر المتقارب انواع اقسامی هست از و حال سلاسه تامه مشهورترینش سه تا هست که هر سه هم تامند لبهر المتقاربه انواع از و ها سلاسته و وهی از صحیح و و اون انواع عبارت است از متقارب صحیح که گفتیم ضربش میشه فعولن زربش میشه فعول و محضوب که گفتیم اونه که ضربش میشه فعول حسبش داخل میشه و مقصورون گفتیم اونیه که ضربش میشه فعول درست شد و تفعیل تو زرب و تفعیل زرب هی تو تعین نوع البر و تفعیل زرب فقط تعیین نوع بحر میکنه کنیم لعن نتفعیلت الاروز چرا میگیم اروز نه؟ میگه لعن تفعیلت العروض لا تثبت و علا حالت واحدته زیرا تفعیل عروض تو اینجا به یه شکل ثابت باقی نمی ذهاب چی بهش داخل میشه؟ زهاف قبض یعنی فعولو و زهاف الذي و على تفیلات حشمه و عروضه اون زهافی که داخل میشه بر تفعیلات حشمش و عروضش خب زهاف القبض زهاف القبضه و علت زهاف قبض یعنی میشه فعول تمام و علت القصر زربهی فقط و على ضربی فقط علت قصر فقط به ضربش داخل میشه الا في المسافر. مگر در بیت مسرع مثل همین که الان دیدیم که یعید با جدید با هم بیت مسرع بودن هر دو شد فول و علت الغز تدخل علا ضربهی فقط الا فی المسرع و علت الحزن فوع تدخل علا ضربهی و عروزهی هم به ضربش داخل میشه هم به عروزش الا انها لا تلزمو فی تفعیلت تل العروس اگر تو تفیل عروس داخل بشه لازم نیست مگر شما ندیدید توی اون صحیح داخل شده بود به تفیل عروس لازمم نبود درست میتونست سالم بیاد اومده بود مگر در جایی که بیت مسرر با باشه درست فهیه ف هیه تجری مجر الذهاب فی پس این علت حذف که داخل میشه در عروض درست شو این اینجا جاریمجرای بگو جاریمجرای زحافه قابل ادامه نیست یعنی شما الان توی اون قسم یک نگاه کنید تو قسم یک تو قسم یکش که گفتش که متقارب صحیح الان تو بیت اول درست شو تو اون عنی سا انی. تو اون فعول آمد محضوطه اما تو بیت دومش مشیبی فعولون اومد ادامه پیدا نکرد، پس توی عروزش این علت قصر مثل زهاف میمونه قابل اجرا و قابل ادامه نیست فهیه هنا تجری مجر زهاف فی عدم رزو بهر متقارب هم تمام شد الحمدلله. بیشترین بحور این کتاب رو ما در خدمت شما بودیم خوندیم و انشالله که شما هم با همتی که دارید و توفیقی که خداوند به میده موارد رو حفظ میکنید یاد میگیرید و موقعیت هر کدوم از این خواهد. و انشالله تعالی ما هم در خصوص مواردی رو که به‌عنوان سوال امتحانی به شما خواهیم داد قاعدتا یک سری اصطلاحات رو ممکنه ازتون سوال کنیم که مثل عروض چیه؟ ضرب چیه؟ و هم صدر چیه؟ عجز چیه؟ اصطلاحاتی که در اول درس خوندیم باید این اصطلاحات رو بلد باشید. خب یک سری تعاریف اونچنینی هست که یاد میگیرید بعد هم همین عبیات یعنی حساب کنید الان تو این درس چند تا بیت خواندیم عبیات به شما داده خواهد شد همین عبیاتی که خودم بیان کردم و معنا کردم عبیات رو به شما خواهیم داد شما این عبیات رو تقطیع میکنید و نوع اون بهر رو و اتفاقاتی که تو اون ها افتاده مثل که سالم است مقبوزه هست, مقبوز هست، محضوفه این از بحر متقارب صحیحه یا بحر متقارب محضوفه یا مقصوره تعییم میکنید و بیان میکنید ترجمه عبیات صرف و نحوش نمیدونم بلاغتش این چیزهایی که در عبیات بنده گفتم هیچ کدامشان برای امتحان نخواهد آمد. یعنی بیتی که به شما میدیم نه ترجمه میخوایم، نه تجزیه و ترکیب شون میخواید نه نکاتی که اونارو گفتیم که شما یاد بگیرید و بیت رو بفهمید پس ما در امتحان فقط از شما عبیات رو تقطی کردنش تشخیص تفعیل و نوع بحر رو میخواهیم به انضمام اون تعاریفی که داخل کتاب در اوایل درس با هم خوندیم پس الان انگار که برگه امتحانی جلو شماست و شما میتونید از روش بنویسید. جای سوالی هم دیگه باقی نیست. به خداوند متعال توکل کنید و التماس و دعا داریم. انشالله که همهتون موفق هستید و من آرزوی توبیخ و خوشبختی برای همه شما دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.